قصه‌ی هزار یک شب شبی هفدهم دختر گفت ملک زاده را به آمدن بغداد ترغیب کردم او سخن مرا بپذیرفت و آن شب را با ملک زاده به سر بردیم. چون بامداد شد هر دو پیش ناخدا آمدیم. اهل کشتی در جستجوی من بودند. چون مرا بدیدند شاد گشتند و سبب غیبت من باز پرسیدند. من ماجرا باز گفتم. چون خواهران من ملک زاده را با من بدیدند، بر من رشک بردند و کیننگ مرا در دل گرفتند. چون به کشتی بنشستیم باد مراد برآمد و کشتی براندیم. اما خواهران پیوسته از من می که با این پسر چه خواهی کرد؟ گفتم که او را به شوهری گزینم و به خواهران گفتم که ملک زاده از آن من و آنچه کالا در این کشتی دارم همه از آن شما. اما خواهران در هلاک من یک رأی و یک دل بودند و من نمیدانستم هنگام شام به بستر نزدیک شدیم درختان و ها نمودار گشت در همانجا لنگر انداختند پس پاسی از شب رفته بخفتیم خواهران مرا با ملک زاده در روی بستر به دریا افکندند اما ملکزاده چون شناوری نمیدانست غرق شد و به نیکان پیوست. ولی من به تخته ای نشسته شناک همی کردم تا به جزیره برسیدم و آن شب را در جزیره به روز آوردم. با آمداد در جزیره به هر سو میرفتم. راهی پیدا شد و جای پای آدمیزادی در آن راه دیدم و آن راه از جزیره به بیابان میرفت. من آن راه گرفته به سوی بیابان رفتم ایدم که ماری از پیش و اجده از پس او همی دود. مرا بدان مار مهر به جنبید. سنگی برگرفته اجده را کشتم. در حال مار به سان مرغ پریدن گرفت. من شگفت ماندم و از قایت رنجی که برده بودم در همانجا بخفتم. چون بیدار شدم دختری دیدم که پای من همی مالد. من از او شرمگین گشته راست نشستم به او گفتم تو کیستی؟ گفت ساعتی بیش نیست که تو دشمن مرا کشتی و با من نیکیها کردی من همان مارم که از اجدهایم برهاندی بدان که من از جنیانم و اجده نیز از جنیان بود چون خلاصی مرا سبب شدی من نیز به کشتی رفتم و آنچه که به کشتی اندر مال داشتی همه را به خانه تو گرد آوردم و خواهرانت را به جادو دو سگ سیاه کردم آنگاه مرادر رو بوده با آن دو سگ به فراز خانه فرود آورد دیدم که آنچه در کشتی بود همه را آورده است پس آن مار گفت اگر همه روزه به هر یکی از این دو سگ سیصد تازیان نزنی به نقش خاتم سلیمان سوگند که تو را نیز بدین صورت کنم. ای خلیفه: من از بیم آن جن تازیانه به خواهران خود میزنم و به مهر خواهری گریه میکنم. خلیفه از حکایت دختر شگفت ماند و به دختر دیگر گفت: تو بازگو که سبب زخم تازیانه در بدنت چه بوده است؟ حکایت دختر تازیان خورده دختر گفت ای خلیفه پدری داشتم چون درگذشت وسی مال به میراس گذاشت پس از چندی مردی از نیک نیکبختان و محتشمان روزگار را به شوهری برگزیدم یک سال رفت که او نیز بمرد هشتاد هزار دینار زر سرخ به میراث گذاشت من همه روزه یک گونه جامعه گرانبها پوشیده به کامرانی همی گذاردم تا اینکه یک روز پیر زالی که گره در ابرو و چینن در جبین داشت نزد من آمد و چنان بود که شاعر گفته زلف او چون روی او باریک و زرد روی او چون زلف او پرچین و تاب خرد سالی نیک لاکن وقت نوح از تنورش خاست طوفان آب القصه اجوز بر من سلام کرد و گفت نزد من دختری هست یتیم که امشب بهر او بساط عیش فروچیدم همین خواهم که دل او را به دست آورده امشب در آن بزم حاضر آوی این بگفت و بسی لابه کرد و پای مرا بوسیده بگریست. مرا دل برو سوخت. خیشتن را بیاراستم و با تنی چند از کنیزکان برفتیم تا به خانه بلند که سر به ابر میسود برسیدیم. چون از درب درون شدیم دیدم که فرش‌های حریر گسترده و قندیل های بلور آویخته و شام هاوی کافوری افروختند و در صدر تختی از مرمر که مرسع به در و گوهر بود گذاشته پرده ی حریری آن تخت آویخته. دختری زهر جبین که توده ی بر ارغمان شکسته بود از پرده به در شد و سلام کرد و این دو بیت برخاند. تو از هر درک بازایی بدین خوبی و زیبایی دری باشد که از جنت به روی خلق بکشایی ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناست در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی پس از آن بنشست و مرا بنشاند گفت برادری دارم از من نکوتر که تو را در رهگذری دیده و دل به مهر تو سپرده است. این پیرزال به طمع مال پیش تو آمده که تو را به حیلتی پیش من آورد. اکنون بدان که برادرم میخواهد تو را به خود کابین کند. من بی مزایقه رزامندی آشکار نمودم و سخن او را بپذیرفتم. دختر شاد شد و در پشت پرده دری بود آن در بگشود پسری چون قمر به در آمد. به دانسان که شاعر گفت نگاری که از دو همی شمس و قمر خیزد. بهاری که از دو یاقوتش همی شهد و شکر خیزد. هزار آشوب بنشاند هران گاهی که بنشیند. هزاران فتنه برخیزد هران گاهی که برخیزد. من چون پسر را دیدم بسته کمندش گشته دل به عشقش نهادم. آن پسر بر کرسی که در صدر خانه بود بنشست. در حال قاضی و گواهان به خانه درآمدند و مرا به دو کابین بسته بازگشتند. آنگاه پسر با من گفت باید سوگند یاد کنی یا پیمان بربندی که دیگری بر من نگزینی و جز من با کسی دیگر ننشینی من با او پیمان بستم و با یکدیگر دیگر لحو لعب همی کردیم تا شب برآمد. خان تعام بگستردند خوردنی خوردیم و آن شب را با ترب و انبساط به روز آوردیم و در آغوش یکدیگر بخفتیم و تا یک ماه بدین سن در عیش و نوش بودیم که روزی از روزها به تفرج بازار دستوری خواستم مرا جواز داد و عجوز را همراه من کرد من و عجوز به بازار شدیم و در دکه جوانی که با عجوز سابقه الفت داشت بنشستیم متایی از آن جوان خریده قیمت بشمردم. آن جوان قیمت نستد و زرها به من باز داد گفت چه محل لارد و دینار چیست مدعیم گر نکنم جان نسار من این کالای مختصر پیشکش ها بردم. من با عجوز گفتم اگر قیمت نستاند کالا رد خواهم کرد جوان گفت من هیچ کدام باز نستانم یک بوسه ی تو نزد من بسی خوشتر از زر و مال است عجوز با او گفت از یک بوسه چه طرف خواهی بست و با من گفت ای دخترک یک بوسه تو را چه زیان دارد گفتم میدانی که من پیمان بستم و سوگند خوردم گفت اگر تو را ببوسد و تو هیچ سخن نگویی خلاف عهد و پیمان نخواهی کرد پس آن عجوز مرا به بوسه دادن ترغیب همی کرد تا اینکه سخن او را بپذیرفتم و سر پیش برده چشم بر هم نهادم جوان لب بر لبم گذاشته مرا ببوسید و لبم را چنان بگذید که فگار گشت و خون از او برفت من بیهوش شدم اجوز مرا در آغوش کشیده به هوش آورد دیدم که دکان بسته و اجوز محزون نشسته است پس با من گفت برخیز و به خانه رو در بستر بیماری بخواب من همه روزه به زخم تو مرهم نهم تا بهبودی پدید آید پس من و عجوز حیران همی رفتیم و بسی بیم داشتیم چون به خانه رسیدیم من به بستر افتاده بیماری آشکار کردم چون شوهرم آمد گفت چه بر تو رسیده گفتم بیمارم پیش آمده جراحت دندانم در لب من بدید گفت ای لعبت خندان لب لعلت که گزیده در باقه لطافت گل روی تو کچیده گفتم کوچه تنگ بود و اشتران بار هیزم آوردندی چوبی نقاب من بدرید و روی مرا مجروح کرد گفت فردا شکایت به حاکم برم که همه هیزم فروشان بکشد گفتم و بالا کسی به گردن مگیر که من سوار خری شدم خر برمید و من بیافتادم چوبی روی من بخراشید گفت فردا به جعفر برمکی بگویم که همه صاحبان خر بکشد من گفتم غذایی بر من رفت چرا تو با همه مردمان از بهر من کینه همی ورزی؟ چون این سخن بشنید در خشم شد و گفت نگفتمت رخ تو باغ من است و تو باغ بان منی به هیچ کس مده از باغ من گلی زنهار و گفت بسیار توقف نکند میوه پربار چون آم بدانند که شیرین و رسید است رفت آنکه فقا از تو گشاییم دیگر بار ما را بس از این کوزه که بیگانه مکیده است پس از آن بانک برزد غلامان سیاه از در در آمده مرا از بستر دور کرده به روی خاک انداختند آنگاه به غلامی گفت بر سر من بنشست و دیگری را گفت پاهای من بگرفت و به دیگری گفت این روسبی را دو نیمه و بر دجلش بیفکن تیغ تیق برکشید من به احوال خیش نگریسته بگریستم و گفتم گر حلال است که خونه همه عالم تو بریزی آنکه روی از همه عالم به تو آورد نشاید چون شعر بشنید و گریستنم بدید خشمش فزون گشته و گفت تا چه کردم که تو بر من به گذیدی دگری؟ اینت بی مهری و بی رحمی و بی گری. چه کنم گر تو به دوزخ چو شکفت سمنی؟ چه کنم گر تو به آرز چو دو هفته قمری؟ پس از آن با خود گفتم به هزین نیست که فروتنی کرده بنالم، شاید از کشتنم بگذرت پس این بیت بخواندم ز قتل چون منی گر خاطرت خوشنود میگردد به جان منت ولی تیغ تو خون آلود گردد چون شعر به انجام رساندم بگریستم نگاهی به من کرده دشنامم داد و این دو بیت برخاند خیز کندر دلبری در بند و پیمان نیستی روک اندر دوستی یک رو و یک سن نیستی چون به ترک جان به باید گفتنم در عشق تو هم به ترک تو بگویم خوشتر از جان نیستی چون دو بیت به انجام رسانید بانگ به قلام زد که این را بکش من به مرگ آماده شدم و خیشتن به خدای تعالی سپردم در حال همان عجوز در رسید و خود را به پای شوهر من بیافکند و گفت ای فرزند به پاداش خدمت های دیرین من از این بیچاره درگذر که او گناهی نکرده که سزاوار چندین عقوبت تواند بود و تو نیز جوانی از خون ناحق او بر تو همی ترسم جوانی جان من پند غلام پیر خود بشنو مکن کاری که از دستت دل پیر و جوان لرزد جوان گفت به پاس خاطر تو از کشتنش درگذشتم ولی باید عقوبتی کنم که پیوسته اثر آن بر جای بماند آنگاه غلام را گفت که جامع از من بکند و شاخها از درخت برچید و بر پشت و پهلوی من چندان بزد که بیهوش شدم. چون به هوش آمدم خود را در خانه خیشتن یافتم. به مرهم و دارو پرداخته تندرست شدم. ولی اثر ضربت در تنم بر جای ماند. به که خلیفه مشاهده کرد. پس چون چهار ماه بگذشت به, به آنجا که این حادثه آنجا روی داده بود برفتم. دیدم که خانه ویران گشته. جز تل خاک اثری نمانده. سبب آن را ندانستم و پیش همین خواهر بیامدم و این دو سگ را به نزد او دیدم و سرگذشت به دو باز گفتم. نیز مرا از ماجرای خیش بیاگاهانید پس هر دو با هم بنشستیم و تا اکنون هیچ کدام نام شوهر به زبان نبردهیم. و این دلاله از روی مهربانی همه روزه ضروریات زندگانی از بحر ما آماده می کند و دیرگاهی بود که به دینسان به سر می بردیم تا اینکه دی خواهر ما به عادت معهود به بازار رفته خریدنی به خرید و حمال بیاورد چون شب شد آن گدایان برآمدند و شما به صورت بازرگانان بیامدید. آمدید با آمدادان خیشتن را در بارگاه خلیفه یافته ایم و حکایت ما همین بود خلیفه از شنیدن این حدیث در عجب شد و فرمود که حکایات نوشته پاینده بدارند سبد اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.